فصل دهم ده کمی تعجب کردند تلاشم را کرده بودم که با احتیاط بگویم خانم ترینر مات و مبهوت مانده بود بعد کمی دست باچه شد صورتش هم جمع شده بود دخترش که کنارش روی کاناپه تنباتمه زده بود چپ چپ نگاه میکرد مثل وقتهایی که وقتی مادرم میخواست توش داری بدهد و من حساب کار خودم را میکردم خبری از آن استقبال گرمی که انتظارش را داشتم نبود خب حالا واقعا برنامد چیه؟ هنوز دقیق نمیدونم خواهرم حسابی تو اینجور کارا دست و پا داره خیلی خوب بلده که توی اینترنت بگرده تلاششون میکنه تا ببینه برای افرادی مثل ویل چه امکاناتی وجود داره اما بیشتر مایل هستم بدونم شما موافق هستید یا نه توی اتاق پذیرایی نشسته بودیم. همان اتاقی که روز مصاحبه به آنجا رفته بودم با این تفاوت که این بار خانم ترینر و دخترش روی کاناپه نشسته بودند سگ پیرشان که آب از لب و روچهش آویزان بود، بینشان نشسته بود. آقای ترینر کنار آتش ایستاده بود. من کت مدل فرانسوی از جین نیلی رنگ، پیراهن کوتاه و پوتین ارتشی پوشیده بودم. با خودم فکر کرده و به این نتیجه رسیده بودم که اگر ظاهر هرفهی به خودم بگیرم، راحتتر میتوانم می توانم نخشم را پیاده کنم. کامیله ترینر به جلو خم شد. سبکن ببینم چی شد؟ تو می خوایی ویلو از خونه ببری بیرون؟ بله، ببری تفریح و دنبال ماجراجویی. طوری حرف میزد زد که انگار پیشنهاد داده بودم عمل جراحی لاپاراسکوپی را بسپاریم دست یک آدم ناشی. بله، همونطور که گفتم هنوز نمیدونم چه چیزایی ممکنه اما بیرونش میبریم و در دنیای دیگه ای رو به روش باز میکنیم شاید توی همین شهر و منطقه چیزایی باشه که اولش بتونیم انجام بدیم بعد دورتر میریم هم دورتر منظورت سفر خارجیه؟ خارجی؟ پلکی زدم اولش میشه به کافه برد یا نمایش؟ تو این دو سال گذشته ویل به ندرت از خونه رفت بیرون به غیر از وقتایی که میره بیمارستان برای ویزیت. خب آره با خودم فکر کردم تلاشمو میکنم تا رازیش کنم جورجینا ترینر گفت: یابد خودتم هم همه تو باش میری؟ گوش کنید اصلا چیز قیرادی نیست حرف من اینه که برای شروع باید از خونه ببریمش بیرون چرخی تو اطراف قلعه بزنیم یا بریم کافه بعدش چقدر عالی میشه بریم فلوریدا شنا با دولفینا العاده است در اصل هدفم بیرون بردنش از خونه است فکره دیگه دیگهی تو سرش بندازم. اما نگفتم که هنوز هم فکر رانندگی و بردن ویل به بیمارستان عرق سرد به بدنم می نشند. فکر خارج بردنش مثل این بود که فکر کنم میخواهم در مسابقه دو ماراتون شرکت کنم آقای ترینر گفت مم. چه فکر بکری فکر کنم گردش بردن ویل فوقلاده باشه میدونید که اصلا خوب نیست شبان روز بشین و فقط به دیوار زل بزنه خانوم ترینر گفت استیون ما خیلی تلاش کردیم ببریمش بیرون اینطور نیست که گذاشتیمشون جا تا بپوسه بارها و بارها زورم و زدم میدونم عزیزم، اما به جایی نرسیدیم، غیر اینه؟ اگه لویزا دنبال برنامهایی بره که ویل بتونه انجام بده، عالیه. این حرف تو به کار و عمل احتیاج دارم. من گفتم. فعلا فقط در حد فکره. یک بار احساس خشم کردم. میتوانستم حدس بزنم در ذهنش چه میگذرد اگه نمیخواید من... دیگه نمیای نگاهش مستقیم به من بود صورتم را بر نگردندم. دیگر از او نمیترسیدم چون حالا او را برتر از خودم نمیدیدم زنی بود که میتوانست بنشیند و به پشت صندلی تکیه بدهد و بگذارد پسرش جلوی چشمانش پرپر پر بزند بله احتماله پس تهدید میکنی؟ کنی خب بابا چرا انقدر حاشیه میرین؟ صاف و شق نشستم تهدید نیست نقشه که میخوام داشته باشم نمیتونم ساکت بشینم و منتظرشم تا وقتش صدایم به تدریج ضعیف شد همه به فنجان های چای زل زدیم آقای ترینر با قاطعیت تمام گفت همونطور که گفتم به نظرم فکر خوبیه اگه بتونی رضایت ویلو جلب بکنی هیچ اشکالی در این کار نمی بینم. واقعا دوست دارم بره بگرده فقط به ما بگو که چه کاری باید بکنیم خانم ترینر دستش را روی شانه دخترش گذاشت فکری به ذهنم رسید جورجینا شاید تا هم بتونی با اونا بری من گفتم از نظر منم خوبه واقعا همینطور بود چون شانسم برای بردن ویل به سفر خارجی به اندازه شانسم در پیروزی در مسابقات قهرمانی بود. جورجینا ترینر بیقرار و ناآرام در جایش فول خورد. نمیتونم. خودتون میتونین که دو هفته دیگه کار جدیرمو شروع میکنم. نمیتونم همون اولش مرخصی بگیرم و بیام انگلستان. برمیگردی استرالیا؟ چرا تعجب کردی؟ گفته بودم که فقط برای دیدن میام. فکر کردم فکر کردم با توجه به حوادث اخیر شاید بخوای بیشتر بمونی کامیل ترینر طوری به دخترش زل بود که هرگز به ویل نمیزد هرچقدر هم ویل گستاخانه رفتار میکرد مامی کاری که پیدا کردم فوق است دو سال دنبالش بودم نگاهی به پدرش انداخت. من نمیتونم به خاطر وضعیت روحی ویل زندگیمو رو کنم. سکوت سنگینی برقرار شد. منصفانه نیست. اگه من روی صندلی چرخ نشسته بودم از ویل میخواستید که تموم برنامه زندگیشو زندگیش رو کنه؟ خانم ترینر به دخترش نگاه نکرد. من سرم را پایین گرفته بودم و فهرستم رو میخوندم. پاراگراف اول را چندین بار خواندم جورجینا حالا دیگر داشت می‌کرد. منم زندگی دارم باید یه زندگی خودمو رو بکنم. آقای ترینر دستش را رو روی شانه دخترش گذاشت و آرام فشار داد جورجینا، بعدن در موردش صحبت میکنیم. خانوم ترینر گفت، آره، بعدن صحبت میکنیم. کاغذ های مقابلش را ورق زد. بعد به من نگاه کرد و گفت، خب. فکر میکنم این اینطوری باید پیش بریم من باید تمام برنامه هاتون رو بدونم باید بررسی کنم و ببینم اگه امکانش هست برنامه طوری تنظیم کنم که گاهی مرخصی بگیرم و با شما بیام تحتیلی های بی دارم که نه همه به طرف آقای ترینر برگشتیم نه کامیلا، فکر نکنم درست باشه تو هم بری باید بذاریم ویل خودش تنها بره استیون ویل خودش تنها که نمیتونه خیلی چیزا هستی وقتی ویل بیرون میره باید بهش توجه بشه کار سختیه بگم نمیتونیم به سپاریمش دسته نه عزیزم میتونه کمک کنه لوزام خودش ترتیب کار رو میده اما ویل باید احساس کنه که هنوز تواناه حس مردانگیش باید حفظ بشه اگه قرار باشه مادرش یا خواهرش کنارش باشن که فایده نداره دلم برای خانم ترینر میسوخت. با اینکه هنوز همان قیافه متکبرانه را داشت، اما می توانستم ببینم که سردرگم است. گویی منظور شوهرش را درست درک نمی کرد. دستش به گردن بندش رفت. من گفتم: "خیالتون تخت، مواظبش هستم. برنامه‌امون پیش ها پیش به شما میگم." آر چنان سفت شد که از ای کوچکی درست زیر گونهش بیرون زد. دوست داشتم بدانم هنوز هم از من متنفر است. بالاخره گفتم، من میخوام ویل بخواد که زندگی کنه. آقای ترینر گفت، میفهمیم و به از ما ارادت احترام میذاریم و به شعورت. دوست داشتم بدانم کلمه شعوری که او به زبان آورد فقط در رابطه با ویل بود یا کلن مرا آدم با شعوری میدید. بعد بلند شد و من فهمیدم که دیگر باید بروم جورجینا و مادرش هنوز روی کاناپه نشسته بودند چیزی هم نمی گفتند حس میکردم به محض اینکه پایم را از اتاق بگذارم بیرون بحث داغی پیش خواهد آمد درسته همین که فکرامو کردم می نویسم. خیلی زود وقت زیادی آقای ترینر شانم را نوازش کرد میدونم. فقط ما را در جریان کارا بذار ترینه به دستش فوت می پاهایش غیر ارادی بالا و پایین میرفتند. انگار در جا قدم رو میکرد. کلاه بوست بره یه سبز تیره ی من سرش بود. لجمع میگرفت وقتی میدیدم به او بیشتر میآید. به جلو خم شد و به فهرستی که از جیبش درآورده بود اشاره کرد بعد دستم داد. احتمالا باید دور شمارست خط بکشی تا بعد که هوا گرمتر بشه. نگاهی به فهرست کردم. بسکتبال معلولان؟ نمیده شاید بسکتبال کتبالو سنده باشه. مهم نیست ها, ها چقدر سرده کلاه را تا گوشش پایین آورد مهم اینه که میبینه چه کارایی میشه کرد میبینه که آدمایم هستن بدتر از اون که ورزش رو اینجور کارا میکنن مطمئن نیستم حتی نمیتونه فنجون دستش بگیره به نظرم فقط از دو پا فلجن گمون نکنم بدون استفاده از دست بشه توب که دوکتر رو نگرفتی؟ مجموع نیست که حتما کاری انجام بده فقط میخوایم بیبریمش به یه دنیایی دیگه درست؟ بیبریمش تا ببینه که بقیه معلولا چه کارایی میکنن؟ قبول اگه تو اینطور میگی. زمزمه از جمعیت برخاست. دوندگان خیز برداشتند و قدمی عقب رفتند اگر روی سرپنجه پا می میتوانستم ببینمشن تقریبا سه کیلومتر دورتر پایین در یک گروه کوچک از نقطه های سفید ورجه ورژ ورج کنان در هوای سرد و مرطوب و در امتداد جاده خاکستری می دفیدند. به ساعتم نگاه کردم. تقریبا چهل دقیقه می شد که روی تپهی که اسم با مسمایی به نام تپهی پرباد داشت ایستاده بودیم. بیشتر از این دیگه قادر نبودم روی پا بایستم. تموم برنامه های محلی رو بررسی کردم. اگه نمیخواید راه دوری برید؟ یکی دو هفته دیگه یه مسابقه توی مرکز ورزش برگزار میشه. حتی میتونه روی نتیجه بازی شرطبندی کنه. شرطبندی؟ با شرطبندی درگیر مسابقه میشه بدونی که خودش بازی کنه. اوه، اونجا رو نگاه کن. فکر می‌کنی چقدر طول بکشه به ما برسن؟ نزدیک خط پایان ایستادیم. روی پلاکارد برزنتی بالای سرمان که در ورزش با تکان نوشته بود خط پایان مسابقه سگانه بهاری نمیدونم بی شاید شدم بیشتر شکلات مارم اگه میخوای نصف کنم دست توی جیبم کردم باد به قدری شدید بود که نمیشد کاغذ را نگه داشت دیگه چه چیزایی پیدا کردی؟ گفتی که راه دورم میرید. آره؟ به دستم اشاره کرد مزایی تره که خودت برداشتی بیا مال تو فکر کنم همش رو فکر میکنم من دارم مفخوری میکنم چون میخوای بعضی روزهای لعنتی ببرش بیرون؟ ای خدا باید خوشحال باشن که یکی داره تلاش میکنه نباید اینطوری فکر کنن ترینا تیکه بزرگتر را برداشت حال. شماره پنج رو ببین کلاس کامپیوتر که میتونه بره یه چیزی شبیه یه تیکه چوب بالای سرشون میذارن که اونا با تکون دادن سر میتونن دکمه‌های سفاکیتیت و لمس کنن. از این را میتونن دوستای زیادی پیدا کنن. اینطورم نیست که مجبور باشن همیشه خونه بیرون برن. من حتی با دو نفر تو اتاق گفتگو حرف زدم. به نظر آدمایی با روحیه‌ای اومدن. شانه بالا انداخت. خیلی طبیعی و عادی. ساکت شدیم و شکلات من را خوردیم. به گروه دونده نگاه می کردیم. خستگی از سر و رویشان می بارید. پاتریک را نمی دیدم. یعنی اصلا ندیده بودم. جهرش طوری بود که در جمعیت گم میشد. ترینا به تیک کاغذ اشاره کرد. حالا بریم بخش فرهنگی. کنسرت مخصوص توانخواهان خواهان است. آدم بازوغیه. آره؟ فقط اونجا میشینه با موسیقی حال میکنه. یعنی خود بی خود درست؟ درک همون سیبیلویه توی محله کارم به من گفت که یه کمی پرسر و صداست چون افراد طبانخواب گای فریاد میکشن، اما همون مطمئنم خوشش میاد چینی ببینی انداختم و گفتم مم. ترین ها نمیتونه. تو ترسیده که گفتم اهل ذوق زغ... و با کنارش بشینی بدون خشخش پاکت چیپس یا اگه چیز بهتری میخوای نیشخنج زد و ادامه داد یه باشگاه استریپتیز وی لندن هست میتونی ببریش اونجا کار فرمو ببرم به تماشای استریپتیز گفتی هر کاری آزاری براش بکنی فقط نظافت و غذا دادن و اینجور کارا که ریز کرد چند نفری که اطراف ما بودن سرشان را برگرداندند. خواهرم قشقش به خنده افتاده بود خواهرم از مسائل جنسی اینطوری حرف میزد انگار یه کار تفریحی بود انگار چیز مهمی نبود از طرفی سفرهای دورترم میشه رفت نمیدونم خودت چی دوست داری اما میشه به لئار رفت و شرابشو چشید برای شروع راه دوری نیست اشکالی نداره معلول مست كند نمیدونم <تص Period> <متاخ> از خودش بپرس اخمی به فهرست کردم و گفتم پس میرم و به خانواده ترینر میگم میخوام پسر معلول و مستعد خودکشیشون رو ببرم تا مست کنه. پولتون رو سرف استریپتیز و اینجور چیزا میکنم. بعدم حالش میدم و میبرم المپیک طبان خواهان. ترینه کاغذ رو از دستم کشید. خب با این حساب میبینم با هیچ کدوم اینا موافق نیستی. فکر کردم. نمیدونم. بینیم رو مالیدم. راستشو بخوای کمی میترسم. حتی وقتی میخوام ببرمش توی حیاط با هزار زحمت راضیش میکنم. خب اینم یه حرفی. اوه نگاه کن. رسیدن. بهتر لبخند بزنی. با بیحالی فریاد زدم. پاتریک تونتر. مرا ندید. با حد اکثر سر سرعت به سوی خط بایان میده. ترینا وقتی دید فهرستش را آن جور باید و شاید تحویل نگرفتم تا دو روز با من حرف نزد. به در مادرم توجه نداشتند. از اینکه شنیدن تصمیم ندارم کارم را ول کنم حسابی سرکیف بودند. مدیریت کارخانه مبلمان برای آخر هفته تدارک جلساتی دیده بود و پدرم فکر می کرد یکی از افرادی است که از کار بیکار می شود. افراد بالای چهل سال را نگه نمیتشتند. مادرم گفت: عزیزم خیلی ممنونی مزد که به خرج خونه کمک میکنی این حرفش اغلب معذبم میکد هفته مزخرفی بود ترینه شروع به بسته بندی وسایلش کرد هر روز مجبور بودم دزدکی به طبقه بالا بروم و نگاهی به چمدانهایی که بسته بود بیاندازم تا ببینم کدام یکی از وسایلم را برداشته تا با خودش ببرد بیشتر لباسهایم سر جایشان بودند اما دیدم سه این کافتابی بدلی مارک پرادا را برداشته است و کیف سفری لوازم بهداشتی محبوبم که طرح لیمو داشت. اگر اعتراض میکردم شانه بالا می‌انداخت و می‌گفت خب تو که وقت استفاده نمی کنی. انگار موضوع همین بود. ترینا چنین آدمی بود، همیشه حق به جانب. بعد از ثولاد توماس هم این حس را از دست نداد که ته خانه است. این حس چنان در رو ریشه داشت که واقعا فکر میکرد مرکز تمام عالم است وقتی بچه بودیم و چیزی از وسایلم را میخواست چنان شری به پا که مادرم همیشه به من میگفت بده بهش شاید مادرم فقط میخواست آرامش خانه حفظ شود واقعا تا 20 سال بعد چیزی تغییر نکرد ما مجبور بودیم از توماس نگهداری کنیم تا او بتواند بیرون برود شکم بچهش را سیر کنیم تا او نگران چیزی نباشد هدیه کریسمس و تولد درست حسابی برایش بخریم چون حالا که توماس هست ما به خودش کمتر هدیه می دهیم. اما حالا باید بدون کیف سفری لوازم بهداشتی من میرفت یادداشتی به در اتاقش اس وسایل من مال من است تو هم بزن به چک ترینا یادداشت را پاره کرد و به مادرم گفت که من هنوز بزرگ نشدم و حتی از توماس هم بچه تر هستم. این موضوع فکرم را سخت به خود مشغول کرد یک شب که ترینا به کلاس شبانهاش رفته بود من سر میز آشپسخانه نشستم. مادرم داشت پیراهنهای پدرم را برای اتو جدا می کرد. مامی. جانم. فکر میکنی بعد از رفتن ترینا میتونم به اتاقش اسباب کشیگا کنم؟ مادرم لحظه ای مکس کرد. پیراهن نیمه تا شده را به سینه فشرد. گفت. نمیدونم. اصلا بهش فکر نکردم. وقتی ترینا و توماس دیگه اینجا نباشن حقشه که من یه اتاق درست حسابی داشته باشم مسخره است که خالی بمونه اگه میخواد بره دانشگاه مادرم سری تکان داد و با احتیاط پیراهن را داخل سبد گذاشت آه آره فکر کنم حق با تو باشه از اولش هم حق من بود که بزرگتر هستم فقط به خاطر توماس بود حرفم به نظرش کاملا منطقی آمد درسته با صحبت میکنم وقتی با خودم فکر کردم دیدم کاش اول به خود خواهرم گفته بودم سه ساعت بعد ترینا داد و فریاد زنان به اتاق نشی من آمد بیزا کفرم خشک شه بعده دایرز کن بدر بزرگ از خواب پرید روی صندلی چرت میزد دستش به طور غیرعادی روی سینه قرار گرفت سرم را از تلویزیون برگرداندم از چه میزنی؟ تو ما سعتيلات کجا بخوابیم؟ ما دو نفر که توی اون اتاق قوطی کبریتی جا نمیشیم. حتی جای دوتا تختم نداره. دقیقا من بدبخت پنج سال تموم نفسم نتونستم بکشم. این فکر که اصلا مقصر نیستم باعث میشد بیشتر از آنچه نیتم باشد واکنش با نشان دهم. تو نمیتونی اتاقمو تصاحب کنی. انصاف نیست. دوره خانخانی تموم شد اما نمیشه. ای هیچ جوری من توماس نمیتونیم توی اون اتاق خودی که بدی جاشیم ای بابا تو بهش بگو بابا قیافه مصممی به خودش گرفت دستایش را روی سینه قلاب کرد متنفر بود که ما با هم دعوا کنیم ترجیح میداد موضوع را برای حل و فصل به مادرم واگذار کند گفت و ساکت باورم نمیشه پس برای همین بود که کمک کردی برم چی؟ این که تو التماسم کردی که کارمو ویل نکنم تا بتونم کمک مالی کنم به تو حالا نقشهی شیطانی من شده که اینطور خیلی درویی مامی در چارچوب در ظاهر شد کاترینا ساکت از دستکی شاش بسخانه که دستش بود آب کفالوت روی فرش اتاق نشیمن میچکید با آرامش هم میتونیم حرف بزنیم پدر بزرگان اینقدر عصبی و نگران نکنیم صورت کاترینا از خشم لکلک لک شده بود. بچگیهایش هم وقتی به خواسته نمیرسید همینطور میشد. قنی تو دلش آب شده که من دارم میرم. حتی نمیتونه سب کنه تا برم. به من حسودی میکنه که توی زندگیم دارم به جایی میرسم. فقط میخواد کاری کنه که دیگه نیایم خونه. با خشم زیاد فریاد زدم. از کجا معلوم حتی آخر هفته آن بیای. من اتاق میخوام نکوم بهترین اتاق خواب در اختیار تو بودین همه مدت چون فقط به در درد لای جرز میخوری مامی گفت: لویزا آره اگه اینقدر خنگ نبودی که حتی نتونی یه کار درست حسابی واسه خودت دست و پا کنی، می‌تونستی از این خونه گم کنی. دختری خرس گنده. اصلا موضوع چیه؟ نکنه فهمیدی پاتریک قصد خاستگاری از تو رو نداره؟ صدای بابا سکوت را شکست. بس کنید. بنزکاف شنیدم. ترینا ترینه براش خونه. لو همینجا بشین و دهنتو ببند خودم توی زندگی به اندازه کافی نگرانی دارم دیگه لازم نیست ببینم سر هم داد می کشید ترینا همینطور که ما می داشت او را به زور از در بیرون می آهسته گفت کور خوندی اگه فکر کردی که حالا برای اون فهرست لعنتید بهت کمک می کنم هر بلایی سرت میاد حقته گفتم به کمکت احتیاج ندارم. مفخور بعد وقتی بابا روزنامه را رو به طرفم پرت کرد من هم جا خالی دادم صبح شنبه به کتابخانه رفتم با خودم فکر کردم به احتمال قوی از وقتی دبیرستان را تمام کردم اولین بار از آنجا می روم. دیگر نگران نبودم که یادشان بیاید وقتی کلاس هفت بودم کتاب جودی بلوم را گم کردم. و وقتی دارم از در ستوندار سبک ویکتوریایی ساختمان داخل می‌شوم، شدم دست کرده مأمور دراز شود و تقاضای 3853 پوند جریمه کند. کتابخانه عوض شده بود. سی سیدی و دیویدی جای نصف کتاب را گرفته بود. قفسه های بزرگ کتاب و حتی جایگاه کارت های تبریک پر از کتاب های گویه شده بود. سر و صدا هم بود. صدای آواز و کف زدن از قسمت کودکان می آمد. مادر و کودک سرشان حسابی گرم بود. افراد مجله می و آرام با هم حرف می زدند. بخش مربوط به پیرمردانی که روی روزنامه های مجانی خوابشان می‌پرد کلن جمع شده بود. به جای آن میز بزرگ بهیزی گذاشته بودند که دور تا دورش کامپیوتر بود. با احتیاط پشت یکی از آنها نشستم. آرزو میکردم حواس کسی به من نباشد. کامپیوتر مثل کتاب اشق خواهرم بود. خوشبختانه ظاهرا کتابدارها می‌دانستند بعضی افراد مثل من با دیدن این تغییر و تحولات دچار وحشت می‌شوند یکی از کتابدارها کنار میزم آمد و یک کارت و ورقه سلفوندار دستم داد که دستورالعمل نوشته شده بود بالای سرم هم نایستاد بلکه زیر لب گفت که پشت میزش است و اگر به کمک بیشتری نیاز دارم می‌توانم به او مراجعه کنم بعد فقط خودم بودم و یک میز با چرخ لق و یک صفحه سفید. این سالها فقط با کامپیوتر پاتریک کار کرده بودم. خودش فقط برای دانلود برنامه های تناسب اندام یا سفارش کتاب های فنون ورزشی به آمازون استفاده می اگر استفادههای دیگری هم از آن می من واقعا هیچ علاقه ای نداشتم بدنم. طبق دستور که کتابدار به من داده بود عمل کردم. بعد از اتمام هر مرحله دوباره آن را کنترل کردم. به طرز شگفت انگیزی دیدم که از اهدهش برمی آیم. واقعا هیچ کاری نداشت. چهار ساعت بعد فهرست خودم را در دست داشتم. کسی حرفی هم از کتاب جودی بلوم نزد. ولی باید این را هم بگویم که از کار عضویت خواهرم استفاده کرده بودم. سری را هم به خانه، سری به فروشگاه لوازم تحریر زدم و تقویم دیواری خریدم. از نوعی که در اداره ها می شود دید و تعطیلات رسمی در آن مشخص شده است. به اتاق کوچکم رفتم و بازش کردم. با دقت به پشت در اتاق سنجاق کردم. روز شروع کارم را در خانه ترینر علامت زدم. اول فوریه بود. روزها را یکی یکی جلو رفتم تا به روز خودکشی رسیدم. که سیزده اوت بود حالا فقط چهار ماه فرصت داشتم یک قدم اقب رفتم و لحظه‌ای به آن زل زدم میخواستم ببینم حلقهٔ كوچک سیحا تقویم تحمل وزنش را دارد یا نه همینطور که زل زده بودم با خودم فکر کردم میبایست آن های سفید و کوچک را با بهترین برنامه‌های پر میکردم که میتوانست شادی خوشنودی رضایت خاطر یا لذت به همراه داشته باشد فقط چهار ماه ارزشمند فرصت داشتم باید برنامه ریزی می کردم و این چهار ماه را با گردش، سفر، دید و بازدید رستوران و کنسرت پر می کردم باید به هر کاری که می توانست در این راه مفید واقع شود متوسط می شدم باید درست و حسابی تحقیق می کردم تا مطمئن می شدم عملی هستند و بعد باید ویل را راضی می کردم. به تقویم خیره شدم. خودکار هنوز دستم بود. انگار یک بار تمام مسئولیت ها روی این یک تیکه کاغذ افتاده بود. یکصد روز فرصت داشتم که ویل ترینر را متقاعد کنم تا به انگیزه ای برای زنده بودن. دارد.